به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد با نام و یاری خداوند آرزوی سالی نکو برای همه جهانیان به روز خرداد از ماه فروردین ششم فروردین ماه خجست زاد روز و گاه به پیام بری رسیدن بزرگ پیامآور سرزمین ایرانی، ایرانی زرتشت اسپنتمان به فرخندگی نخستین سال سبت این روز پرشگون در گاه شمار رسمی کشور عزیز من. نقل داستان به پیام بری رسیدن زرتشت به روزگار پادشاهی گشتاس به را از اثر گرانسنگ فردوسی بزرگ شاهنامه سطورگ تقدیم حضورتان میکنم نقلی که دقیقی شاعر آن را سرود و حکیم توس امانتدار نکویی برای آن گشت شاه راسب در آخرین هنگامه های پادشاهی خیش تخت شاهی به فرزند سپرد خود به بلخ گزین رفته به مانند گاهانیک مردم راه نیایش یزدان در پیش گرفت گشتاسب که فر و بخت پدر داشت تاج شاهی بر سرنهاد برای رامش مردمان بر مرزها ها و مرزبانان بنشاند و در جهان نام ورگشت چو یک چندگاهی برآمد بر, آمد بر درختی پدید آمدند در زمین از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ درختی گشن بیخ و بسیار شاخ همه برگ او پند و بارش خرد کسی که از خرد برخورد کی مرد خجست پی و نام او زرد هشت که منی دست گیتی بشست به شاه جهان گفت پیغمبرم تو را سوی یزدان همی رهبرم برم اشوزرتوشت به یاری وحمن رو به گشتاسب نموده سخنان خداوند یکتا آفریننده آسمان و زمین به دو آشکار می سازد. جهان آفرین گفت بپذیر این نگه کن بر این آسمان و زمین که بی آب و خاکش برآورده ام نگه کن به دوتاش چون کردهام ام نگر تا تواند چون این کرد کس مگر من که هستم جهاندار و بس گریدون ایدون دانی که من کردم این مرا خواند باید جهان آفرین چون خداوند یکتا این جهان آفریده پس ورا باید جهان آفرین خاند زگوینده بپذیر بهدین او، بیاموز از او راه و آین او نگر تا چه گوید بران کار کن خرد برگزین این جهان خار کن نبرده برادرش و رخ زریر کجا رنده پیل وریدی به زیر پدرشان شه پیر گشته به بلخ که گیتی به دل درون بود تلخ سران بزرگ از همه کشوران، پزشکان دانا و گنداوران همه سوی شاه زمین آمدند، ببستند کشتی، به دین آمدند پسازاد گشتاسب برشد بگاه، فرستاد هر سو به کشور سپاه پراکند گرد جهان مو نهاد از بر آزران گن بدان نخوست آزر مهر برزین نهاد به کشور نگر تا چه آوین نهاد یکی سرو آزاده بود از بهشت به پیش در آزر اندر بکشت نبشتش آن زاد سرو صحیم که پز رفت گشتاسب دین بهی گوا کرد مر سرو آزاد را چون این گستراند بر خرد داد را سرو آزاد کشمر سرو سپنتا و مقدسی که به خاست و اراده اشو زرتوشت خاشته شد و بر روایات هران کس که قصد افکندن آن کند خود افکنده و نابود گردد چو چندی برآمد بر این سالیان ببالید سرو صحیح همچنان چنان گشت زاد سرو بلند که بر گرد او بر نگشتی کمان چوبالا براورد بسیار شاخ بکرد از بر او یکی خوب کاخ گشتاسب کاخی با ایوانهای از زر و سیم و نه از آب گل از بر سر به کشمر بنا نهاد چهل رش به بالا و پهناو چهل نکرد از بنه اندرو او چو ایوان برآوردهش از زر پاک زمینش همه سیم و انبرش خاک بر او برنگاریده جمشید را ستائنده ماه و خورشید را فریدون ابو غرزه گاوسار به فرمود کردن برانجا نگار همه مهتران را به دانجا نگاشت نگر تا چون این کامکاری که داشت فرستاد هر سو به کشور پیام که چون سر به کشمر بگیتی کدام کنون جمله این پند من بشنوید پیاده سوی سرو کشمر روید بگیرید پند از تهمزرد هشت به سوی بطه چین برارید پشت به آیین پیشینگان نگان من گرید بدین سایه سرو بون بگیروید همه نامداران به فرمان اوی سوی سرو کشمر نهادند روی نوروز و جشن زایش اشوزرتوشت بر همه ایرانیان آزاده و سرومنش منش شاد با